الان هستی که همه از اونی میشنه این ادام خطر یا روزیتی روزد و مرمی و مرمی و آن روی نرکر به جنگ میرود جسدهای سوخته همه رو به چشم میبین خودت با چشات رساتو باز میکنه جال خلیج عربی عشق میرزی دیگه با تو بعدی شه که تاریخ تو به باد میره میدونی اقتصاد دیگه منین نداره واسه کشوری که حکومتی نیست سوار شادهین دیگه نباشه ولی تو مجبوری واسه خواهره دو اتاق شبز به پوری حس ترس میکنی بیمار سنای پ خبرای فخت صددا بنسی و ز همین سبازو می جنگ می میرن جنل آلا داال می فلنگ میوند آره درست وقتی تو داری آرزو مرگ می کنی میریزه روی کمرت خال میکن جای بمبازنده با چنگ همه چی برعکس میشه کی درست همین بر دنیا داره جا با سنده باد رنگ پرچم از سفیده مناشق سلحم ولی مجبورم به جنگم بدن یه عدد که لاش به دستم تیر توخشا گلنگ دن کشیده آماده یه نبردم پلاک بگردم ولی خوب این جهن دیگه تن به تنیم موشک های هوا به زمین زرش های کشتی شاید رنگ دشمنم نبینم ولی مجبورمواسه خاکم خون بریزم بریسمهشگاه مادرم یادم نمیره حتی یه لحظه از ذهنم دور نمیشه میدونم نیومدم بیر سربازم تنها چیزی که منو چشون دی اینجا ایرانه مع ای چوب دو سرگوم هم. همین وریا منو زدن همون وریا میزنن منو ح نده تو س خودم داوطلب چون بهنظرم جنگلا بتر چیم زدن یکی درست اون ور دنیا داره واسه منو تو یه نقشه میریسه رو کمت خااب میکووبنی بوم با زنده باد جنگ چی برعکس میشه کی درست همین بر دنیا داره جای نقش شریختن در میره روی کمله جخال کوبی جای بوم با زنده باد رنگ پرچم سفیده